مزار پدرم در شهر دیگری است و من توفیق زیارتان را ندارم چطور میتونم از راه دور موجبات رضاحت ایشان را فراهم کنم نماز بکنم نماز واجب هرچند بسیت نکرده باشه بیادش نماز بکنه. خیلی مؤثره خیلی بزرگی براش چه پدر چه مادر فرق ندارم مادر و مادرم. خیلی عجیب خدا با مادرها مادرانه برخورد میکنه. فرمایش کردن به حضرت موسی الان نبی نو و علی السلام یا موسی بندگان من بگو که من از مادر به شما مهربانترم. این مهربانیش رو با مادرها در عالم برزخ و قیامت بیشتر از مردها نشون میده. از جنس خودشن آتفه و احساس و حواتفه انسانیشون مدرها زیادتره خدا به اونها بیشتر نظر داره رضا در دستورات داره که بدار پدراتون برسید خودش درست میکنه کارمدر رو